دوم یک داستان معاصر همراه با یادداشت‌های مردی سعی می‌کند در قطاری بین لندن و ادینبورو کار کند. هوای بعد از ظهر یک روز گرم بهاری است. کاغذها و دفتر خاطرات روی میز جلویش قرار دارند و کتابی روی دسته صندلی باز است. ولی این مرد از نیوکاسل به بعد نتوانسته فکرش را جمع کند یعنی از هنگامی که زنی به واگن وارد شد و در راه راهرو نشست این زن پس از اینکه چند لحظه با خون سردی به بیرون از پنجره نگاه کرد سرگرم خواندن چند مجله شد او از دارلینگتون مشغول خواندن مجله واقع بوده است او مرد را به یاد پرتره خانم هوگ گولبرگ اثر کریستن می میاندازد گرچه آن مرد نمیتواند هیچ از این اسامی را به خاطر آورد. که چند سال قبل آن را در موزه در دانمارک دیده و از مشاهده آن به طرز عجیبی تکان خورده و غمگین شده بود ولی برخلاف خانم هوگ گولبرگ او موی قهوهی کوتاه و شلوار جین و یک جفت کفش ورزشی و پلیووری یقه هفت دارد که آن را روی تیشرتی پوشیده است مرد در میابد که بر روی مچ دست ککمکی رنگ پریده زن ساعت اسپورت دیجیتالی وجود دارد که به طرز نامتناسبی بزرگ است در تخیل خود مجسم می کند که دستش را در موهای خرمایی رنگ زن فرو می کند. پشت گردنش را نوازش می کند و او را می که در کنارش به خواب رفته و لبهایش اندکی مات است در خیال خود تصور می کند که با آن زن در خانه‌ای در جنوب لندن در خیابانی پر از درختان گیلاس زندگی می کند. گمان می کند که آن زن باید نوازنده ی ویولونسل یا تراه گرافیک یا پزشک متخصص در تحقیقات ژنتیکی باشد. فکرش به دنبال راه می می‌گردد تا سر صحبت را با او باز کند. او به این راه ها فکر می‌کند. بپرسد ساعت چند است؟ مدادی بخواهد. بپرسد دستشویی کجاست؟ نظرش درباره آب و هوا را جویا شود. از او اجازه بگیرد تا به یکی از هایش نگاهی بیاندازد. دلش می‌خواهد قطار تصادف کند و واگن آنها به یکی از جوزارهای پهناور اطراف پرتاب شود. در آن آشوب آن زن را صحیح و سالم نجات خواهد داد و همراه او به چادر نزدیکی که گروه امداد برپا کرده اند پناه می برد. در آنجا به آنها چای ولرم تعارف می کنند و آن دو به چشمهای یکدیگر یکدیگر خیره می شوند. سالها بعد وقتی کشف می کنند که قبلا در تصادف دردناک قطار سری و سیر با هم ملاقات کرده اند مجذوب و شیفته یکدیگر خواهند شد. ولی چون به نظر می رسد که قطار تمایلی ندارد که از خط خارج شود و گرچه می داند افکارش پوچ و بیهوده است مجبور می شود گلویش را صاف کند و از آن فرشته بپرسد آیا خودکار اضافی دارد یا نه؟ این کار برای او مثل آن است که از روی پلی بسیار بلند بپرد. یک فلاسفه سنتن به این موضوع علاقه نداشتند. به نظر آنها بلاها و های عشق بیش از حد بچگان است و شایسته تحقیق نیست و بهتر است که این موضوع را به شاعران و مجنونان واگذارند. وظیفه فلاسفه نیست که در باب گرفتن دست و نگارش نامه های معتر تعمل کنند. شاپنهاور از این بیتفاوتی حیرت کرد. باید تعجب کنیم که چگونه موضوعی که معمولاً چنان نقش مهمی در زندگی بشر بازی می کند تا کنون تقریباً به کلی مورد بی فلاسفه بوده و به صورت ماده خام و ناپرورده در برابر ما قرار دارد. این بی نتیجه انکار متکبرانه جنبی از زندگی بود که تصور انسان از خودش به عنوان موجودی اقلانی را نقز می‌کرد. شپنهاور بر این واقعیت آزاردهنده تاکید داشت عشق در هر ساعتی جدیترین ترین اشتغالات را بر هم می زند و گاهی برای ای حتی بزرگترین ازهان را فلج می کند عشق بدون هیچ درنگی در مذاکرات دولت مردان و تحقیقات فضلا اختلال ایجاد می کند عشق میداند چگونه یادداشت های عشقی و گیسوان خود را حتا به داخل مجموعه اسناد وزارتی و دستنوشته های فلسفی بلغزانند عشق گاهی نیازمند قربانی کردن سلامت، ثروت، مقام و خوشبختی است. دو مثل رسال نویس گاسکونی که 255 سال قبل از او متولد شده بود، شوپنهاور دل مشغول امری بود که انسان را به چیزی کمتر از موجودی عاقل بدل می‌کرد. انسانی که فرض می‌شد عاقل موجودات است در کتابخانه آپارتمان شپنهاور در شنوسیخت مجموعه ای از آثار منتنی وجود داشت شپنهاور خوانده بود که چگونه نفخ نهاری سنگین یا ناخونی فرو رفته در گوشت می عقل را از مقام خود اصل کند و با این دیدگاه منتنی موافق بود که از هان ما تابع بدنهای ماست به رغم اعتقاد متکبرانه ما به امری مخالف این دیدگاه سه ولی شپنهاور فراتر رفت، به جای توجه به مثالهای سستی از ازل عقل به نیرویی در درون ما پرداخت که به نظر او همواره بر عقل غلبه دارد. نیرویی آنقدر قوی که همه نقشه ها و داوری های عقل را دستکاری می کند و این نیرو را اراده معطوف به حیات نامید و آن را سائقه ذاتی در انسانها برای بقا و تودید مثل تعریف کرد. اراده معطوف به حیات حتی افسردگان واداده را در هنگام کشتی شکستگی یا بیماری شدید به مبارزه برای بقا رهنمون می شود این نیرو تضمین میکند که متفکرترین و حرفه‌ای ترین افراد هم با دیدن کودکانی که قان و قون میکنند اقفال شوند حتی اگر تحت تاثیر قرار نگیرند که به هر حال بچه ای داشته باشند و به محض تولدش به او به شدت عشق بورزند اراده معطوف به حیات است که سبب می شود مردم با دیدن مسافران جذاب در راه روی قطار بین شهری عقل خود را از دست بدهند. چهار. شاید شپنهاور از آشوب و نگرانی ناشی از عشق متنفر بود. تعارف کردن انگور به دختر مدرسه‌ای ها کار آسانی نیست ولی آن را نامناسب یا تصادفی نمی دانست. این حالت کاملا با کار کرده عشق متناسب بود. چرا این همه سر و صدا و حیاهو چرا این همه استرار، داد و قال، دل شوره و تقلا؟ چرا چنان چیز بی اهمیتی باید چنین نقشه نقش مهمی بازی کند؟ اینجا هیچ چیز بی اهمیتی وجود ندارد. برعکس اهمیت این موضوع با جدی بودن و شور و شوق این کار کاملا متناسب است. هدف قایی تمام روابط عشقی؟ واقعا مهمتر از تمامی دیگر اهداف زندگی انسان است و بنابراین این کاملا سزاوار همان جدیت شدیدی است که همگان در مورد عشق از خود نشان میدهند و هدف چیست نه وصل و نه آزادی جنسی نه درک و نه سرگرمی امر رمانتیک بر زندگی قالب است زیرا تعیین کننده یه چیزی غیر از تکوین نسل بعدی نیست یعنی وجود و سرشت خاص نوع بشر در ااعثار آتی. چون عشق ما را با چنان نیروی به سوی دومین فرمان از دو فرمان مهم اراده معطوف به حیات پیش میبرد، شوپنهاور آن را گریز ناپذیرترین و فهمیدنی ترین دل ما میدانست. پنج این واقعیت که وقتی شماره تلفن کسی را از او میگیریم به ندرت به تداوم نوع بشر فکر میکنیم، نافی نظریه شپنهاور نیست به نظر او ما به دو زمیر خداگاه و ناخداگاه تقسیم ایم ناخداگاه ما تحت سلطه اراده معطوف به حیات و خداگاه ما تابع آن است و نمی‌تواند تمامی نقشه‌های آن را بفهمد و زمیر خداگاه به جای اینکه موجودی حاکم باشد خدمتکار نیمه بینای اراده معطوف به حیاتی است که مشغول کودک است خرد به کارگاه مخفی تصمیمهای اراده نفوذ نمی کند البته خرد محرم راز اراده است ولی محرم رازی که همه چیز را نمیداند خرد فقط آنقدر میداند که برای پیشبرد تولید مثل لازم است که چه وسا به این معنی باشد که بسیار کم میداند خرد از بخش امده از مقاصد واقعی و تصمیمات مخفی اراده خودش محروم می ماند. این محرومیت توضیح می دهد که چگونه ممکن است به طور خداگاه چیزی بیش از اشتیاقی شدید به دیدار دوباره کسی را احساس نکنیم و در همان حال به طور ناخداگاه بر اثر نیرویی برانگیخته شده باشیم که معطوف به تولید مثل نسل بعدی است. چرا چنین این اخوالی حتی باید لازم باشد؟ زیرا به نظر شوبنهاور اگر اول عقل خود را از دست ندهیم به طور قطعی موافق تولید مثل نخواهیم بود. 6 این تحلیل یقیناً تصور ما را از خودمان به عنوان موجودی عقلانی نقض میکند ولی حداقل با این نظرها مقابله میکند. اینکه عشق رمانتیک قفلتی اجتناب ناپذیر از انجام دادن کارهای جدی تر است. اینکه میتوان نوجوانان بیکاری را که از نور محتاب قش می کنند و زیر لحاف حق حق گریه می کنند، بخشید ولی اگر بزرگترها به دلیل دیدن کسی در قطار از کار خود قفلت کنند مرتکب عملی غیر ضروری و دیوانوار شدهاند. نظریه شوپنهاور درباره اراده که عشق را از نظر زیست شناختی اجتناب ناپذیر و کلید تداوم نوع بشر می از ما می‌خواهد که موضع ملایمتری نسبت به رفتار عجیب و غریب ناشی از عشق اتخاذ کنیم. آن مرد و زن پشت میزی شیشه ای در رستورانی یونانی در شمال لندن نشستند. کاسه زیتون بین آنها وجود دارد ولی هیچ از آنها نمی راهی پیدا کنند تا زیتونها را با متانت لازم بردارند و بنابراین زیتونها دست نخورده می مان. زن خودکار نداشت ولی به مرد مدادی داد پس از لحظه درنگ زن گفت که از مسافرت طولانی با قطار نفرت دارد اظهار نظر زائدی که به مرد اندک دلگرمی لازم را داد زن نوازنده ی یا طراح گرافیک نبود بلکه وکیلی متخصص در سرمایه‌گذاری مشترک در یک شرکت شهرسازی بود اهل نیوکاسل بود ولی هشت سال بود که در لندن زندگی می کرد. وقتی قطار به یوستون رسید، مرد شماره تلفن زن را گرفته و موافقت او با پیشنهاد صرف شام را جلب کرده بود. پیشخدمتی خدمتی می آید تا سفارش غذا بگیرد. زن سالاد و شمشیر ماهی سفارش می دهد. او مستقیماً از سر کار آمده و پیراهنی به رنگ خاکستری روشن پوشیده و همان ساعت قبلی را بردست دارد. آنها شروع به صحبت می کنند. زن میگوید که فعالیت دلخواه او در تعطیلات آخر هفته سخر نوردی است. از زمان دانش آموزی این کار را شروع کرده و جزو گروه های اعزامی به فرانسه، اسپانیا و کانادا بوده است. او هیجان معلق بودن در ارتفاع 100 پا بالاتر از کف دره و چادر زدن در کوههای مرتفع را جایی که صبح در داخل چادر قندیل ها به وجود آمدن توصیف می کند. ولی مرد حتی در طبقه دوم ساختمان های مسکونی هم احساس سرگیجه می کند. زن به رقص نیز علاقه شدیدی دارد. او انرژی و احساس آزادی در هنگام رقصیدن را دوست دارد. وقتی بتواند تمام شب را بیدار می ماند. ولی مرد ترجیح می دهد ساعت یازده و نیم بخوابد. آنها درباره کار حرف میزنند زن درگیر پروندهی مربوط به حق ثبت بوده است. یک تراه کتری اهل فرانکفورت به دلیل نقض قوانین کوپی رایت علیه شرکتی انگلیسی اقامه دعوا کرده است. این شرکت مطابق بند علف تبصره یک ماده شست قانون حقوق ثبت مسبب سال 1977 محکوم است. مرد روایت طولانی پرونده حقوقی بعدی را تقییب نمی کند بلی نسبت به هوش زیاد زن و همانندی های خودشان مطمئن شده است. یک یکی از جرفترین اسرار عشق این است. چرا او؟ چرا از بین تمام گذینه های ممکن؟ چنان میده شدیدی به این فرد داریم؟ چرا او را بالاتر از دیگران می در حالی که صحبت او هنگامشام روشنگران ترین صحبت و عادتهایش مناسب ترین عادت نبوده است و چرا به رغم حسن نیت نتوانستیم به دیگران علاقه جنسی پیدا کنیم دیگرانی که شاید در واقع همانقدر جذاب باشند و شاید زندگی کردن به آنها راحت تر باشد دو این مشکل شاپنهاور را نکرد ما آزاد نیستیم که عاشق همه شویم زیرا نمیتوانیم از همه بچهای تندرستی داشته باشیم اراده معطوف به حیات ما را به سوی افرادی جلب میکند که شانس ما را برای ایجاد بچه‌های زیبا و باهوش زیاد میکنند و ما را از کسانی دور میکند که این شانس را کاهش میدهند عشق چیزی نیست مگر جلوه آگاهانه کشف والدی آرمانی از جانب اراده معطوف به حیات لحظه عاشق شدن دو نفر یا به تعبیر بسیار مناسب انگلیسی خوش آمدن آنها از یکدیگر را در واقع باید نخستین مرحله در شکلگیری فردی جدید دانست. در ملاقات‌های اولیه همراه با لفاظی های معمولی ناخداگاه هر دو طرف این امر را ارزیابی خواهد کرد که آیا از این رابطه روزی کودک تندرستی به وجود می‌آید یا نه. دو فرد جوان از دو جنس مخالف در هنگام اولین ملاقات خود با جدیت ناخودآگاهانی عمیقی به یکدیگر توجه می‌کنند. در این کار چیز کاملا منحصر به فردی وجود دارد. نگاه جستجوگر و, و نافذی که به یکدیگر میاندازند و اینکه تمام ویژگیها و اعضا یکدیگر را به طور دقیق وارسی میکنند. این بررسی و آزمایش تأمل و تفکر نوع نابغه یعنی انسان درباره فردی که از این دو نفر به وجود آید. سه هدف اراده معطوف به حیات از این بررسی چیست؟ یافتن شواهدی بر ایجاد کودکان درست؟ اراده معطوف به حیات باید تضمین کند که نسل بعد از نظر روانشناختی و فیزیولوژیکی آنقدر متناسب هست که در جهان پر مخاطره دوام آورد و بنابراین اراده معطوف به حیات می خواهد ببیند که اعضا و جواره کودکان متناسب هستند. نه خیلی کوتاه نه خیلی بلند، نه خیلی چاق، نه خیلی لاغر و آنان صبات فکری دارند. نه خیلی ترسو، نه خیلی شجاع نه خیلی بیاتفه، نه خیلی عاطفی و غیره. چون والدین ما در روابط عشقی خود اشتباهاتی کرده اند، ما نیز به احتمال زیاد از توازن آرمانی فاصله داریم. ما معمولاً خیلی بلند، خیلی مردانه یا خیلی زنانه شده ایم. بینی های بلند و چانه های کوچک داریم. اگر اجازه بدهند که چنین این بی باقی بماند یا وخیم تر شود، در این صورت نوع بشر در زمانی کوتاه به موجودی اچیب و غریب تبدیل خواهد شد. بنابراین اراده معطوف به حیات باید ما را به طرف کسانی سوق دهد که می به دلیل نقصهای خود نقصهای ما را خونسا کنند. ترکیب بینی دراز با بینی کوتاه نوید بخش بینی کامل است و بدین قرار به ما کمک میکنند تا توازن جسمی و روانی نسل بعدی حفظ شود. همه میکوشند تا از طریق فرد دیگری ضعفها، ها، و انحرافات خود، از حالت آرمانی را برطرف کنند تا مبادا اینها در کودکی که به دنیا می آید تداوم یابد یا حتی به صورت نابهنجاری های کاملی در آید. نظریه خونسا شدن به شپنهاور اعتماد به نفس تا راه جذابیت را پیش بینی کند زنان کتاخقد آشق مردان بلنقد می شوند ولی به ندرت مردان بلنقد عاشق زنان بلنقد می شوند. به دلیل ترس ناخداگاه آنها از تولید بچه قولها. مردان زن صفتی که ورزش را دوست ندارند اغلب جذب زنان پسر صفتی می که موهای کوتاهی دارند و ساعتهای بزرگی دست می کنند. شدن خصوصیات فردی دو نفر ایجاب می کند که درجه خاص مردانگی مرد دقیقاً مطابق با درجه خاص زنانگی زن باشد. تا یک جانب بودن هر یک دقیقا یک جانب بودن دیگری را خونسا کنند چهار، متاسفانه نظریه جذابیت شپنهاور را به نتیجه بسیار ناامید کننده ای رساند. بهتر است خوانندگانی که قرار است ازدواج کنند چند پاراگراف بعدی را نخوانند تا در فکر خود تجدید نظر نکنند نتیجه این بود فردی که برای بچه ما بسیار مناسب است هرگز برای خود ما خیلی مناسب نیست گرچه نمیتوانیم این امر را به موقع تشخیص دهیم زیرا اراده معطوف به حیات چشم ما را کور کرده است به قول شاپناور قلم تقدیر به ندرت همراهی آسایش و عشق آتشین را رقم می زند آشقی که فرزند ما را از داشتن چانه بزرگ یا خلق و خوی زنانه نجات می دهد، به ندرت همان کسی است که ما را در تمام طول عمر خوشبخت می سازد تعقیب خوشبختی شخصی و به دنیا آوردن فرزندان تندرست دو برنامه بسیار متضاد هستند که عشق مقرزانه سبب می شود اشتباه کنیم و آن دو را طی چند سالی که لازم است یکی پنداریم. ما نباید از ازدواج افرادی که هرگز نمی توانستند با هم دوست باشند تعجب کنیم. عشق بر کسانی سایه می افکند که اگر رابطه جنسی نبود، مورد تنفر، تحقیر و حتی اشمعزاز یک یکدیگر می بودند ولی اراده معطوف به بقای نوع انسان چنان قویتر از اراده فرد است که عاشق چشمان خود را بر روی تمام صفاتی که از آنها اشم اضاز دارد میبند به همه چیز بیا می‌کند. می درباره همه چیز به طور نادرستی قضاوت می کند و خود را برای همیشه به متعلق شور و اشتیاقش متصل می سازد. بنابراین او کاملا مفتون آن توهم است توهمی که به محض ارزای اراده معطوف به نوع انسان محف می شود و شریکی نفرت انگیز برای باقی عمر بر جای میگذارد. فقط از این طریق می توان توضیح داد که چرا اغلب می بینیم مردان بسیار عاقل و حتی بزرگ اسیر زنان سلیته و دیو سیرت می شوند و نمی توانند چگونه توانستند چنین انتخابی بکنند مرد عاشق ممکن است حتی به وضوح نقص‌های تحمل‌ناپذیر خلق و خو و شخصیت عروسش را تشخیص دهد و احساس ناخوشایندی داشته باشد یعنی به همان نقص‌هایی پیبرد که زندگی سرشار از فلاکتی را به او نوید می‌دهند ولی با وجود این حراسان نشود و نگریزد زیرا در نهایت به دنبال نفع خودش نیست بلکه به دنبال نفع شخص سالسی است که هنوز پا به عرصه ی حیات نگذاشته گرچه مرد عاشق درگیر این توهم است که نفع خودش را تغییر می کند. نظریه شوپنهاورد هلویهن میگوید که توانایی اراده معطوف به حیات برای پیشبرد اهداف خودش و نخوشبختی وقتی ما را میتوان با شفافیت خاصی در خستگی و اندوهی دید که اغلب بلافاصله پس از رابطه جنسی نصیب زوجین می شود. آیا ندیدید که چگونه درست پس از آمیزش؟ صدای خنده شیطان به گوش می رسد بنابراین روزی زنی پسر صفت و مردی دختر صفت با سائقه به مهراب کلیسا می روند که نه خودشان و نه دیگران غیر از تعداد معدودی از شپنهاوری های حاضر در مراسم عروسی به عمق آنها پی نبردهاند. فقط اندکی بعد پس از ارزای نیازهای اراده و هنگامی که کودکی خوشبنیه در باغی واقع در حومه شهر به توپ لگد میزند به این هیله پی میبرند. شوپنهاور ما را در برابر انتخابی قرار داد به نظر میرسد که گویا در ازدواج یا خود فرد یا نفع نوع بشر باید فدا شود گرچه چندان شک و تردیدی درباره قابلیت نوع بشر برای تضمین منافع خود باقی نگذاشت زندگی نسل بعدی به قیمت نسل فعلی تأمین می شود